الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و العاله و اصحابه و بعد المبحث الوارض والأهلیات خب در درس مبحث قبلی خوندیم خوده انواع اهلیت واجب و ادا بعدش هر یک ناقص و کامل داشت مبحث دوم این فصل در رابطه با عوارض اهلیت هست چیش؟ اواری یه سری آوارزی میان دو این اهلیتارو آهلی. میکنند میکنن بله تبیهت شماره 50 العلم بما تقدم ان اهلیت الوجوب تثبت للانسان ناقصه في دور الجنين ثم تصیر كامله بعد ولادته و تبقى ملازمه له ما دامت الحياه فيه میگه از درسای قبلی دانستیم که اهلیت الوجوب ثابت میشه به شکل ناقص برای انسان در دوره جنینی سپس بعد از ولادتش کامل می‌گردد و همیشه همراهش هست تا زمانی که زنده هست اما اهلیت الادا فهیت لا تثبت للانسان في دور الجنین ولا تثبت للسغیر غیر المميز، ثم تثبت ناقصة للسغیر المميز، ثم تکمل له اذا ما کمولا اقلو خب این هم ادامه همون چیز هست میگه از قبل از بحثات قبلی دانستیم که اهلیت الادا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 توی دوید اینی که نداره بعد از ولادت تا تمیز هم نداره در دوره تمیز تا بلوغ ناقصه از بلوغ به بعد کامل تمیز چه موقعی؟ زمانی که تشخیص میده دو مرحل اول اهلیت ادا نداره نه نه دو مرحله اول اهلیت ادا نداره ناقص میشه چارومش کامل میشه زمانی که طرف تشخیص میده میتونه مثلا بفهمه وزوجية نمازية إن تية أون بس خب. هنا بيجي قبل الخندم بيجي ولكن قد يعرض للإنسان بعد كمال لأهليته من الأمور ما يزيلها أو ينقصها ينقصها أو لا يؤثر فيها بالإزالة والنقصان ولكن يغير بعض الأحكام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 امور پیش میاد که یا این اهلیت ها رو کامل از بین میبرند ناقص. یا ناقصش میکنند یا این که نه نا. نه که ناقصش میکنند و نه که از بینش میبرند تاها بعضی از احکامات رو نسبت به همین شخصی تغییر میداد و این امور عوارز اهلیت نامیده بشند به اینا چی بگن؟ عوارز، عوارزه خب پس این تمهید و گفت در رابطه با عوارز خلال أنواع العوارض شماري بن تنقسم العوارض إلى قسمين. من عوارض هايك برا الإنسان فيش ميانت ودر أهليةش تأثير مجزارات دون واحد. يك الأول عوارضهن سماويةهن وهي التي تثبت من قبل صاحب الشر بدون اختيار الإنسان ولهذا نصب إلى السماء لأن ما لا اختيار الإنسان فيه ينسب إلى السماء مثل الجنون والول والمرض والموت. بیگه نوع اول عوارز عوارز سماوی هستند آسمانی عوارز آسمانی اون عوارز هستند که از طرف صاحب شرع هستند انسان در اونا اختیاری نداره به این خاطر به اینا نسبت نسبتشون به آسمان میدن. زیرا انسان درشون اختیاری نداره مانند دیوانگی دیوانگی دست انسان نیست مریضی دست انسان بوت این اوارز که پیش بیان در اهلیات تأثیر بگذارن ولی اینا از نوعی هستن نوع سماوی که انسان در اینا اختیاری ندارد و الثانی اوارز مکتسبتون مكتسب و هی ماکان للانسانی فيها کسب و اختیارون کالجهلی و والاکراهی نوع دوبومه اوارز اوارز مکتسبه هستند کسبی ها مولای که انسان در اونها کسب و اختیار داره مانند جهالت، آقا جهالت یک چیزی که خودش نمیدید، بله، سکر مستی، رفته آقا چیزی رو خورده و الان مست شده، یا اکراه، یعنی اکراه سماوی نیست، اجبار، آقا شما رو یکی میاد اجبار بیکنه که یالا کفر کن، طلاق بده، فلان کفر وسان نتكلم عن بعض الاوارض السماويه والمكتسبه بگی ما در رابطه با بعضی از اوارز آسمانی و اوارز مكتسبه سخن خواهیم گفت ولی ابتدا در مورد کدوم اوارز سخن میگویم؟ مطلب اول الاوارز سماویه، مطلب اول اوارز آسمانی سماوی اینو ان شاء جلسه بعدی اوارز مكتسبه رو چون تا اینجا یعنی چیز خاصی فقط تقسیم بندی های ای بود حالا خود عوارزا رو هنو شروع. پس ابتدا ما عوارز چی شروع بیکنید اولا الجلود عوارزه اولی که آورده چیه؟ دیوانگی آقا پنجادو عرفه بعض الاصولیین دیگه دیوانگی رو بعضی از اصولیون چلید تعریف کردن بینه اختلال و الاغل به حیث یمنه جریان الافعال و الاغوال على نهج الاغلی الا نادر. اصولیون جنون رو تعریف کردند که گفتن اختلال در چیه؟ به گونه ای که اون جریان افعال و, و اقوال به شکل عقلی نیست. مگر خیری؟ نادر. آخه کارش کارهای عقلانهی نیست. حالا ممکنه یک دیوانه یک کار ای انجام بده. الا نادران گفتا. نادر ممکنه که کار خوبی کار ای ولی کارهاش بر منهج و روش عقل نیست, نیست. و هو نا آن خود دیوانگی بر دو نوعه اصلی و تاریون یک دیوانگی اصلی همیشه دیوانه بدبخت یک تاری پیش آمدی و کل من هما اما مبتدون او غیر مبتد و هر کسی دیوانگی ها اصلی و تاری یا طولانی یا ممتد دیست بالا و الجنورو به لا يؤثره في اهلیت الوجوب میگه دیوانگی با هر دنوش چه اصلی چه تاره در اهلیت الوجوب که تأثیری نمیگذاره طرف توش کمه مادره جنینه اهلیت الوجوبو داره حقوقی براش بیاد دیگه نه دیوانی هیچی نداره نه میگه تأثیر در اهلیت الوجوب نداره یعنی اهلیت الوجوبو نفی نمی کنه یعنی نمی نمیبره بابا تذکرت کن والجرور بنائ هل لا يؤثر اهلیت الوجوب دیوانگی با هر دو نوعش در اهلیت وجوب تاثیر نداری یعنی طرف اون اهلیت وجوبش رو داره بگذار که دیوانه یعنی آقا ارث براش ثابته اهلیت وجوب براش ثابته اهلیت ادا و نه مگه بتونه بیاد این آقا نمال بکنه یا کاره دیگه <تصفح> پس جنون با هر دو نوعش در اهلیت وجوب تأثیر نه الا انهو یعثرو فی اهلیت الادا فیعدمها. بیگه ولی در اهلیت ادا تأثیر داره. اونو کامل از بین میبره. کسی که دیوانه است اهلیت ادا شما دیدید که ما اصلا به دیوان ها بین آقا بیم اصلا نماز بخوند؟ خی این آقا اهلیت ادا نه لانها تثبت و بالعقل و تمیز بیگه زیرا اهلیت ادا با عقل و تمیز ثابت میشه و دیوانه همچنی چیزی داره و المجلون فاسد العقل و عدیم كان حكم و تمیزی ولی ها دکنه حکم و حکم صغیر غیر ممیز فی تصرفاتی و افعاله بیگه دیوانه فاسد العقل هست تمیز نداره به این خاطر حکم بچه غیر ممیز رو داره حكم بچه چی رو داره؟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 در این حالت اگر چه که در طول حالتی که حالت دیوانه ای نمی‌تونه ادا بکنه ولی بعد از اینکه به هوش اومد با اینا رو قضایی بیاره بعد دیگه شخصی مثلا وقت نماز ظهر دیوانه بوده آقا مغرب به هوش اومد نه نماز ظهر و عصر رو بخونه ها آه؟ چون اهلیت اداش تقدیرن ثابته بیاره خودش بیاره خودش نسیان شماره سوم از اوارث از اوارث بی خودش بیاره ثانیا بعدی چی هست؟ اته هست, آتح هست. آتح اختلال فی العقلی. بیگه. الان دیگه تعریفش میکنه یا صاحبه قلیل فهمی مقتلیتو الکلامی فاسطو و هو نوان رد اتح ما شما بلوچا یعنی پوک دیوانه نیسا مثل ولی انسان بیچاره سبقی یعنی اقلش خیلی کمی اقلش خیلی کمی اقلش جی این معامله وارد میشه کسی کسی کسی کسی بکنه؟ به قول ماسا جعلاد و بالا ده خودشو تشخیص میده بالا و قایدی تشخیص میده ولی <تصفيق> آه عقل نداره الان تعریفش میکنه دیگه اختلالون فی الاقل یجعلو صاحبه قلیل تحتی بختنی تو کلابی و تدویری یک اختلالی در عقل هست که صاحبه همچنین اختلالتی فهمش خیلی کمه مختلط کلامه سخنانش دقیق نیست تدبیر خوبی نداره زیاده دیده, دیده افرادی رو مثلا میاد اینجا میگردن میگردن شب هم خونه میرند خودشون رو به آب و آتش نمیاندازن ولی کار همه بلد عقلشون برابر و هو نوعا میگه اتح یکدیت فلانی انسان معتویه، از حرفش کمی زنا. عته اول و بر دروغی. عته نه یا بقیه معنی ادراک و نتیجه و صاحبه یکنون فل احكام یک عته داریم که اصلا ترف درک نداره. تمیز و تشخیص نداره. این دیگه به و دیوانه صحیح نداشته. درجه این بالاتر دیگه. أبوه فُقاهي خود بربه كي يباري دراجستيء بالاثر بالاثر يتميز نميره بالثاني أته يبقى معه إدراك وتميز وليس وليس كإدراك القلوب بهذا النوع من الأتى يكون الإنسان البالغ كالسمية المميزة في الأحكام وعلى هذا لا تجب عليه العبادات ولكن يصح منه أداها ولا تثبت في حقه العقوبات ولا تجب عليه حقوق العباد التي يكون المقصود منها المال ويصح أداؤها من قبل الولي كذمان المطلفات وتكون تصرفاته صحيحة نافذة إذا كانت نافئة له نافة محزن وباطلة إذا كانت مضرة له ضرر محزن وموقفة إجازة, إجازة للي إذا كانت دائرة بين والضرر خب دي قداش تباشيد أتهدو إدوفو كالتراف کامل دیوانه نیست در تمیز داره ولی مثل انسان عاقل هم نیست. میگه با این نوع از اته انسان به انسان بالغ مانند بچه ممیه در احامات. بچه ممز ه سال داره هشت سال داره 9 سال داره هنوز بالغ نشده ولی میزه مثل اینه چه احکاماتی داره؟ این اته از این نوع مثل اینه خب خودش میگه سنج از که از نوع دوم هم البته اون درجه یکش نه که دیگه کامل بدار بری میگه با این نازعت انسان بالغ مانند بچه با ممیز هست در احکامات خب خودش دوبار تکرار میکنه که چطور بچه مگه چه حالتی داشت میگه بر این و علی بر این اساس واجب نیست بر هرطوری معتوهی عبادات مثل ممیز عبادت بر واجب نبود ولی اگر انجام بیداد چی بود؟ صحیح, صحیح بود میگه بر این اساس عبادت برش واجب نیست ولیکن ادا کردنش از همچنین شخصی صحیح هست و اقوبات در حقش ثابت نمیشه آقا این آقا اگر اومد جرمی کرده بود دیگه اقوبتش نمیدن و واجب میشه برش حقوق بندگار حقوق مالی حقوق چی؟ مثلا اومد زدی گرفت باید نفقه رو کار بکنه بالی و ادای این ها هم از طرف ولی چه هست؟ صحیحه داره ماند زبار مطلفه بود آقا یه چیزی رو خراب کرد پدرش زمانت میده تصرفاتش ببینید یه دقت کنید قبلن یه سخن رو تکرار نکردید و داشته باشید هم برای بچه ممیز و هم برای معتوه نائه چون این ها حکمشون یکیه معتوه نوع اول مثل مجنون بود که مثل بچه غیر ممیز بود مثل بچه چی بود؟ دیوانه مثل بچه غیر ممیزه که دو سالشه دیوانه مثل اون بود معتو نوع دوم مثل تمید. بچه یکی سن تمیز رسیده بعضی از احکامات شو گفت بعضی های دیگر رو علم دیگه میگه اگر اومد تصرفی انجام داد مثل معاملهی انجام داد میگه بسه بچه ممیزه اگر کاملاً به بود صحیحه کاملاً به ضررش بود صحیح نیست اگر هم توش نف بود همچی اون موقع بستگی به اجازه ولی داره ببینید این حکم ممیز و معتوه نوع دفعه در مورد تصرفات معاملاتش عقدش فلانش ها؟ عبادت نه عبادت نماز روزه و ایناش اگر خود ازش صحیح اما برش واجر نیست نیستان. ولی تصرفاتش کاره که بیره اخواد تهمیش معاملهی بیزنی اینو که تصرف این نوع کاراش اگر نفع مطلق بود براش صحیح زرار مطلق بود صحیح نیست خلاص آقا طرفون بگی بیالا گمشو وسایلی رو که از این آقا خریدی یا بشدادی پسش گرد اگر نه بین بيه هر دو تا دور ویزا دور واقع بستگی به اجازه ولیش داره ببینید از اینجا بگه بگه وتا و کل تصرفاته صحیحه نافذه اذا كانت نافعه له لفع محض تصرفاتش صحیح اجرایی شه زمانی که نفع محض بود و باطل هست زمانی که زرر محض بود و توقف بر اجازه ولی داره یا متوقف بر اجازه ولی زمانی که بین نفع و zarar بود پس دیوانه مثل غیر مميز بود معتوه بردنو بود نوع اول جز دیوانه ها بود نوع دومش جز به بچه ممیز بود خالیتا اندسیان آرزه اندسیان اگر برای اسمان اندسیان پیش اومد آیا احلیت وجودش از بین میره آیا احلیت ادام احلیت وجود که اصلا در این چهالیتی از بین نمیره تا زمانی که زنده است.